و اگر گذری افتادد به کشور دوست بیار نفح از گیسوی سوی دوست به جان او که به شکرران جان برافشانم اگر به سوی منارری قیامی از بر دوست و اگر چونان که در آن حذرتت نباشد بار برای دیده بیاور قوباری از در دوست من دا همان نای وصل او فیحات مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست دل سنوبریم همچو بید لرزان است ز حسرت قد و بالای چون سنوبر دوست اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را به آلمی نفروشیم موی از سر دوست چه باشه در شود از بند غم دلش آزاد چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست